اما دوستان حتما میدونین که بعد از رد هایی که در مورد مجلس خبرگان انجام شد و مهمترینش هم رد صلاحیت حسن خمینی بود جناح اصلاح طلب به ضرب و زور توی شهر تهران یه لیست انتخاباتی رای کرد که با اینکه همه افرادی که توی اون لیست هستن اصلاح طلب محسوب نمیشن اما یه ویژگی داره که سه تا از مهمترین و شاخص ترین چهره های مجلس خبرگان یعنی آقایون جنتی و مصباح یزدی توی اون لیست نیستن و اگر اون لیست ها به شکل کامل رای مردم تهران رو بیارن این سه پدرخانه جریان اصولگرایی به مجلس خبرگان راه پیدا نمیکنن. همین باعث شد که ها که حتی از تصورتون این واجعی هم در حد سه تا سفارت آتش زدن می‌ریزن به هم اینجوری واکنش نشون بدن این های دیروز خطیب نماز جمعه تهران در مورد نقشه های دشمنه که پای بی بی سی رو هم به ماجرا باز میکنه امروز هم نام می‌برن به چه کسانی ملت ایران رأی ندهند به استوانه که از اول عمرشون تا به امروز پای بلایت، از آبرو، از حیثیت، از جان، از همه چیز گذشتن اینا رو نام میبرن، میگن به اینا مردم رأی ندن و به کسانی نام میبرند میگن به اونها رأی بدن اوه اوه اوه چی شود های نظام منظورش هم مثلث آیت جنتی و آیت الله یزدی ها یعنی مادر نژاد کسی که بخواد جله رفتن های نظام به خبرگان رو بگیره ولی خودمونیم حالا اینقدر اینا استوانن اصلا چرا رأی گیری می‌کنن خب بفرستینشون بهن خبرگان دیگه جالبه ها کوچکل انجامشو مردم عزیز و شریف ما به توصیه مقام معظم رهبری به کسانی رای میدهند که اونا میگن رای ندید و به کسانی رای نمیدهند که اونا میگویند رای بدهید خب به سلامتی نتیجه انتخابات خبرگان لاغر توی تهران که مشخص شد جنس این پیش بینی دقیقا از همون پیش بینی های بیصدوی بهمنی بود دیگه یعنی ردخور نداره یک درصد فکر کن مردم شریف و عزیز و مدار ایران به توصیه مقام معظم رهبری گوش ندن به جای رای دادن به این سه استوانه نظام برن به اون استوانهای بیبیسی رای بدن. والا اصلا مگه در جمهوری اسلامی چنین اتفاقی ممکنه. وقتی پشت تیری نماز جمعه میگن و آقا هم قبلا گفته بود که ملت غیور و شجاع فلان کار میکنه حتما میکنن دیگه ردخور نداره حالا سب کنین نتایج انتخابات و اعلام شد خودتون ببینین استوانه نظام اما شوخی نیستن که